راژیو فیلم سب اکبالان خرامیدند و رفتند آخرین شناسایی فرزین اجدری سید پیمان شریعتی حسین غلام رضا اکبری حاجی رزا ایرانمنش حمید شهرام پور اسد معاون حاجی رزا قومی افسر بعسی مصطفی پور حامدی رضا، منصور سهراب پور فرمانده گردان محسن سوری مانده گردان سه جواد هاشمی فیلم فیلمنامه بهزاد بهزادپور علی شاهاتمی بر اساس طرحی از محمد علی فارسی موسیقی فریبرز لاچینی کارگردان علی شاهاتمی فرمانده و معاونش به اضافه هشت نفر از رزمنده ها دور شفیه نشستن حافظ میکنند. می کنن. المنت لله که در میکد باز است. زان که مرا بر در آن روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروش زمستی. وان می که در آنجاست حقیقت نمجازه است. امشب شب آخره دوتا معبرم رسیده پای کار به یاری صاحب زلفقار فردا شبم میزنیم به خط تا نیم ساعت دیگه میریم برای آخرین بار معبرا رو یه آبو مختصر میکنیم تا برای فردا شب خیالمون راحت باشه پس فقط نیم ساعت حافظ حسن جان بسم الله ای پادشاه خوبان باد از قم تنهایی دل بیتو بهجان آمد است که مازایی یوسف گمگشت بازایت به آن قم مخور کلبه اهزان شود روزی گلستان غم مخور خانمش نومید چون باقف نیز اصرار قیب باشدن در غیب بازی های پنهان قمه خور آرزام بسمان درد کشیدم که مپوس زهر چشیدم کشیدم که روز هجران و شب فرغتیار آخر شد زدم این فای و گذشتختر و کار آخر شد این پریشانی شبهای دراز و قم دل همه در سایه گی سوی نگار آخر شد حیوان مستفا بسم الله عطل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود اَر نه هیچ از دل دی رحم تو تقصیر نبود من دیوانه چو زلف تو رها می کردم هیچ لای اخترم از حلقه زنجیر نبود به تیقم گر دستش نگیرم و تیرم من منت پذیرم کمان بروی ما را گو بزن تیر که پیش دست و بازویت بمیرم سید جان بسم الله دیریست که دلدار پیامی نفرست ننوی سلامی و کلامی نفرست صد نامه فرستادم و آن شاه سباران پیکی ندوانی دو. سلامی نفرست از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه ای نیر ای تو دهرن به نجر کل قیانه بسیمچی با گریه گزارش انفجار رو برای حاجی میده سنگرشون هیچی نمونده حاجی حاجی <تصفح> <تصفح> بیا ببین چی به روز بچه هاتو از سه برد زم بخاطیه چه پژی بوده حاجی. میبندی پرداپی میبندی. چه جا بوده کاسی در حاجی. حاجی سوار بر موتور خودش رو به محل انفجار میرسونه. سنگر به کلی ویرانه شده و دود ملایمی از اساس سوخته داخل سنگر دیده میشه. حاجی به از موتور پیاده میشه که دو قدم جلو میاد سانو میزنه از ده نفعشون فقط سید و حسین مونده مواقع حاجی گزارش میده ابراهیم چه؟ هم رو ازش خراده بردنش به دوی موندنی نیست بیزین بزنم گردن حرکت نکنه دیگه دیر شده الان باید که اردهه مخروبه رسیده باشه بچو بید سریکر بچه ها بشه ها بچه ها سوار بر وانت و پیاده پشت سر هم پل و دور میزنن بچه ها به سرعت از وان ها پیاده میشن. به دو خودشونو به سوله های مخروبه میرسیدن داخل سنگر ابراهیم سید و دیگه ای روی تخت راست کشیدن سید حال حالت خوبه؟ با خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه امنی رای تو دهران من ای ابراهیم با سراسورت خونی ماژیکی را با دست باند بسته گرفته و به سختی روی کاغذی که حاجی جلوش گرفته خط می‌کشه ابراهیم روی کاغذ خط می‌کشه تا این بوده چند قدم میشه ابراهیم جان <تصفح> یه دفعه از دهنش خون میاد حاجی دست ابراهیم رو میگیره ابراهیم سرش رو از بالش بلند میکنه <تصفح> <تصفح> دراحت کن بعدا کاملش میکنی حاجی نگران نگاهش میکنه ابراهیم یه خط میکشه و سرش روی تخت میفته حاجی گریه میکنه دست ابراهیم روی صفحه کاغذ بی حرکت میکنه ابراهیم شهید میشه داخل سنگر فرمانده گردان و معاونش رو به روی حاجی نشسته. حاجی. نیروها رو فقط برای یه شب میتونیم تو اون مخروبه نگه داریم. تدارکات و آب غذا رو برای یه توی خط پیش بینی کردیم. توی اون ده مخروبه نه یه قطره آب نه امکانات پطراق سه چهار روز سه گردان. همه چی به هم ریخته حاجی. حاجی تصمیم با شماست. اگه کار قفل شده میتونیم نیروها رو بکشیم عقب. وقتی که راه افتاد با استفاده کار یا حداکثر تا روز دیگه ما باید عملیات کنیم. یا به احتمال 90 درصد شاهده شاهد شلی در دراغیا باید باشیم. اونا میخوان تک بزنن. اگه این اتفاق بیفته، خط اول ما دو کیلومتر عقبتر باید زده بشه. حاج جون شما خودت اوستایی، خوب میدونی اون ده مرغ که گاوه پیشونی سفیده، استعداد اتاق یه شب بیشتر گردان نداره. نیروها اگه تو اون ویرونه‌ها چسل بشن، واسه شب عملیات ما رو دوچار مشکل میکنن راه عملیات بازه. متسا حاج چشموش از دست داده. اگه تا فردا پس فردا راهو پاس نکنیم، زحمات دو ماهی بچه ها به هدر میره هیچ با تک عراقیان لابلای این شیارا سیل خون را میفته معاون حاجی نگران داخل سنگر میشه <تصفيق> مام که احلاقه بشینی نیستیم هستین؟ استغفال الله حاجی بونه این تدارکاتو زیر آتیش گرفتن حاجی و به سرعت بیرون میاد چند انفجار پی در پی در فاصله دورتر اینا رو یه نفر داره هدایت می‌کنه. عراقی‌ها میدونن دارن چرا آتیش می‌گیرین. بچه‌ام هم همین میگه. سنگر گروه تقریبا با 7-8 به اون روزه بردن یعنی اینکه یا تو ختمون یه نفوذی داریم که ها گره میده یا اینکه یه دیدبان عراقی لابلا این تپه جیا خوش کرده. به سلامتی خدا. آجی به سمت حسین و سید که گوشه نشستن میره. چی شد؟ علو نه آجی، نا نیومد. قاسم جان بلا اگه پیداش کردین کشش ددین درگیری بی درگیری اگه اون درگیر ششی؟ دیدبان هیچ وقت درگیر نمیشه به ذره بشه جاش میره دارم میام امید و رضا با موتور نزدیک میشم داخل سنگر یه کروکی کوچیک رویه زمینه و حسین و سید و حمید و رضا روبروی حاجی دوزانوبر 2 دوممون فقط همین کروکی ناقصو داریم. وقتم دو شب حد اکثر سه شب دیره. معبرامون پای کار بازه، هم مسیرشو نمیدونیم. اگرم تیر به جنبیم همه چی از دست میره. یا علی. فقط دو نفر زپاس برای ما داشته باشین که اگه اتفاقی برای ما افتاد مسیرمون رو اصلاح کنن. دعا کنین که اتفاقی براتون نیفته، برای که نیروی زاپاس یه نفرم نداریم. از فقط سید و حسین موندن که اینام رو معبری یک کار میکردن اونم نه تا آخرش ما فقط دو شب نامنظم باشون کار کردیم باش. تا هوا روشنه رو میدون مین یه دوربین بکشه میدان مین حسین و سید حمید و رزا از دورتر با دوربین میدون رو نگاه میکنن من تا به حال میدون مین به این شلوغی و بی نظمی ندیده بودم میدون مین تا پای شیاره ادامه داره تا بیخی گلوی اون شیارا مین کاشتم که قایدتاً معبر یک و دو باید دو تا از اون شیاره شده باشه اما کدوم شیار؟ شما تو معبر یک تا کجاش کار کردی. تا کمرش اصل ماجرا یعنی تا پای رو نبادید. پس امشب برای پیدا کردن معبر بایستی یک به هوای تمیز با مینا و عراقی بازی کنیم. بالای کوه پشتی تخت سنگ یه نفر تکتیر انداز نشسته. دوربین سنگری رو نشون میده. چند انفجار پی, پی دور سنگر و بعد یک خونپاره سنگر رو منفجر میکنه. درستی از پشت تخت سنگ بالا میاد و دوربینو بر میداره داخل سوله رزمنده ها نشستن و عزاداری میکنن و سیم خاردار حسین و سید روی زمین دراز کشیدن حالا هی قد بازی در بیار ببین میتونی کارید از خودت بدی چرا حالید من دو شب بعد از تو اومدم بر تو اینجا اومده بود تازه داشتن از گنار این بودم رد میشدن با این مینوی خونسا شده. رو هوا مبرزدن سینه خیز جلو میره ره. میخ... تو مارمم کجا سید باز کجا داری میری دارم محور بینا میکنم نگاه کن از این وره بوده رد شدن نوک سرنیزه رو رو خاک میکنه آرام آرام یه مینو از زمین بیرون میاره اینم برامند همین دو رضا خیز جلو میره یه ورودیئه. ما که ورودی ما پردولوس میدی. حسین می یا از اول ورودی رو اشتباه اومده این بیا این که معبر تو همین ولی ممکنه مینای خونسر شده رو برای استار دوباره کاشته. اسمت علامتی شاخصی روی مینای خونسر شده گذشته باشه. من گفتم ممکنه احتمالی اینم است که و رو دیره اشتباه آمده باشیم <تصفيق> سید و حسین سینهخیز خودشون <تصفيق> به علامت می‌رسن. دسیم اینم علامت اینم چرا منفر نمی زنم از شب تا حالا یه دونم شلیک نکردم از دورتر درخت تکون میخونه و چند نفر از لای درختها جابجا جا به جا میشن سید و حسین خودشونو به زمین میچسبونن چیه؟ چی شدی؟ مثل که دیوار به دیوار خبرایی سید و حسین رو به روی حاجی نشستن و گزارش میدن حاجی سرش پایین با می گردونه ما پیشنادمون اینه حاجی حالا حاجی شما از میدنید؟ یعنی باید یه تیر دونیشون بزنیم نظر شما چی حاجی؟ بذارین کمیر فکر کنم از حمید و رضا سوال میکنه از معبر شما چه خبر؟ اجیمهoverline تمیز کردم ولی با مینای خونسا شده استتارش کردم. با این واس سرعت شما امکانه. فقط مشکل اینه که برای پیدا کردن ادامه مسیر باید بقیه مینا رو وارسی کنیم. اگه خونسا شده بود تو معوریم. و اینا باید راهمونونو کش کنیم. یعنی شبیه خونسا کرده. البته یک کم با سرعت بیشتر. چی وارد سنگر میشه حاجی رو صدا میزنه. حاجی بیسم سرعت به اتاق بیسی میره. بسم الله. هاجی، چهار تا استوری تو جاده زدن. پر بودن یا خالی؟ pore پر. با تیش دقیق یا پرکنده؟ خوشیش گلوله چهار رو زدن. پشت از بچه‌ی تدارکاتم رفتن مهمونی هاجی. دود غلیزی دیده میشه. توی تاهای تدارکات میسوزن. چند نفر با بارانکارت پیکر شاهردا رو به آمبولانس منتقل میکنند. پشت بوتا ها از فاصله دورتر یه نفر با دوربین محوطه بمباران شده رو میبینه این بار دوم که از این مسیر میاد. اگه دیدبانی به کار بود دهالا پیلاش کرده بودی از تو سوله های خرابه فشورده کنار هم نشستند. فرمانده از میونشون میگذره و حرف میزنه نفس بگی را میفتی آب کمه قضا کافی نداریم جاتون تنگه یار ما یه هوا هم کرده حمرو میدونم، ولی چاره‌ای نیست دلاور بیرون از این اتاقا وضع بدتره با تو این جای سایه این هست که زیرش پناه بگیری حاجی و معاونش صدای تکبیرانداز اون فجار از دور تر شنیده میشه آه چه خبر شده باز کبوتر خوش خبر سلامتی بعد از سلامتی نمیدونم چرا رو بچه تجسس تماس نگرفتن قرار تماس دم قروب بود مانوان خواهیه همید و تو میدون مین مین خونسا میکنن من پره پس از اینجا پیش مبر تموم میشه باید مستقیم بریم ولی رو نگاه کن در قدم دیگه یه دوراهیه. سید و حسین روی زمین درازکش خوابیدند دو نفر از رو به رو از لابلای درختا بیرون میان. تیراندازی شدید از هر دو طرف حاجی پشت خاکریز نشستیم رفتن رو هبا تا حاجی ها کشمیزه باید خودمونو بکشی اینجا دورایی رو چکا کنیم چپ پیریم یا راست قربون دسته پاژیم حتی آتیشو یه بجا بگی بالا تر همچین داره آتیش می روزه انگار نه انگار که ما تو میدونه می رویی درسته داگرم آجارا لومه او بردار یه حراقی هم شمی کردن دران دهترین مبیده حفاظ شما اون سمته بکشیم جلو با این حساب من میرم سمت چپ تو سمت راست هر کدوم به مینای شده برخوردیم آفیه میدان می سید و حسین سینخیز جلو میرم بذارو گونه هم بزنم حدیف سفیدهی صبح خودی منو به محور حراقی ها برسنیم فردا شب راحت از محورشون و کسیشون میگیریم خودمونو می کشم چلا چنین توی داره گریه میکنه و به حاجی رزنش میده هر کدوممون به مین خونسا شده برخوردیم همدیگه رو خبر کنیم هنو چند قدمی دور نشده بودیم که دید. یه دفعه چرا انگلت ادگاهی رفاقت میکنی؟ انقدر بخیل است همه یه و علمه و مغربین آرزو دارن به لقاش برسن اون رفیقت به این مقام رسید تو ازایی گرفتی بیزا پا سید و حسینم نشستن معاون حاجی داخل سنگر میشه حاجی نگاه معناداری میکنه و همی ساکت میشه معاون حاجی به سمت کلمن آب میاد الان میام از دیشب که تماس می گرفتن شد شدم بلی هیچ فکر نگردم که اینطوری بشه حاجی تو سنگر بالای سر شاهدا میرسه کجا پیداشون کردی؟ آورده این درده وسط جادیم اعتمال هم اول قاسم بسیمینوزده بعد مری سرابه کهیم فرمانده به رزمنده یه مطرسوار تأکید می که تانکر آبو حتما بیاره برو وارث تور بیار این تفرکیاستش چی دارن هلاك میشن یه تانکر 2000 لیتری که این همه هنوتلوب نداره برو پسر برو وضعیتش شد این چی میگم ساعت به ساعت بیمارامون دارن زیر فرمانده میشن. با دکتر داخل سوله بهداری شد شربتی مگه تو دم دستات نیست اخر وقتی نمیدونم مریضیشون چیه چه قرصو کپسولی یعنی چه این دیگه چه جور مرضیه نمیدونم والا نمیدونم من تو حالا اینجوریشو ندیده بودم اسحال با چرک گلو موسیقی نیست اونم نمیدونم پزشک میتونه تشخیص بده پزشک اونم تو این برهوت حاجی ساعت به ساعت که نمیتونم آمار بگیرم اینا هی از اتاق میزنن بیرون میادن تو در آقا واسه چی پشه حاجی پشه یه دشون هم رفتن دنبال آب بله دیگه وقتی یه شب میشه سه شب این مصیبت ها هم پشت سرش پیش میاد حاجی گفته زندگی یا دیگه مهم نیست پس بماس اینکه دیدینه شللی کنیم تو از این سمت تو هم از این سمت مرموز سه تا از رزمنده ها از شکاف کوه بالا میان یکی با دوربین نگاه میکنه که یه دفعه تیر به پاش میخوره از که قلت میزنه پایین اینجا بوده لعنتی تله کرده اینجا رو بی پدر مادر آبا سید به معبر عراقی خوش مادی. سید حسین نیمه شب تو میدون مین سیم خاردارو بیچی میکنه سینه خیز میشن با سرنیزه نزدیک میشن به یک جنازه بحثی برخورد میکنن بعد چونی به ما سلطفه؟ موازد باش با تو گاز نگیره؟ مسته نریز افتادیم تو کفی تخت گاز میریم چلو یعنی اینا نمیان؟ جنازه رفقاشون رو ببرن آقا امید و امید یه مینو خونسا می کنن آقا امید جنازه ریزا امینجوری گفتودم اونجا نمیبریمش آقا اون کار دیر نمیشه اما این کاری که الان داریم میکنیم چرا از این به بعدم دیگه حرف نزن چشم داریم وارد شیار رو بالا سرمون عراقی ها از منور قبلی چقدر گذشته؟ حاجی و معاونش پشت خاکری زن هشتری خیلی یا حسین فرمان دهی معاون از حاجی اجازه میگیره منور شلی کنی میدان مین روشن میشه ساعت بگیر دقیقه فیدی تک میکنیم با این منورا حساسیت عراقیا رو میدون این کم میشه فکر میکنم دعا میکنم که کم بشه بریم دیگه وزا خبوشه سید و حسین پشت یه بوته پناه گرفتن حسین و سید خیز جلو میان همین دستش رو تو خاک کرده دنبال چیزی میگرده یه پیدا میکنه که دورش سربند یا زهرا پیچیده شده همید گریه میکنه یه بعضی بین شیار اون طرف سیم خاردار نگهبانی میده سید و حسین پشت درخت‌ها پناه می ده. از شیار رد میشه و خودشو به پشت خاکریز به بعثی ها حمید روی سیم خاردار علامت میذاره آقا حمید میریم سال رزا حسین از شیار بالا اومده سیم خاردار رو میبره سین خیز از زیر سیم خاردار رد میشه میره به سمت بحی ها. حسه پشت درخ رد شدن سید رو می بینه. یه دفعه متوجه میشه چند سرباز بحثی دارن نزدیک میشن. چند قدمی حسین رسیدن. منور هوا رو روشن میکنه بسی ها رو زمین دراز میکشن حسین دسته سرنیزه رو تو دستش محکم فشار میده به آرامی شمارش میکنه امیر کنار یه مین خونسانه شده دراز کشیده دو امیر پیکر رزا را امیر سرش رو روی دستش میذار و به آرومی گریه میکنه بیا بس یا پشت سر هم نشستان دارن جلو میان حسین که هنوز پشت بوتست به آرومی روی زانو میشینه برو بریم کجا؟ رو سرش رو بالا میگیره چشمش به امیر میفته که داره رزا را میبوسه بحت زده نگاهش میکنه امیر رزارو رو بلند میکنه امیر امیر رو صدا میزنه سینخی سعی داره خودش رو به امیر برسونه که یه دفعه امیر امیر امیر امیر, میشه. امیر هم شهید میشه صدای شلیک از طرف بعثی ها شنیده میشه امیر سرش روی دستش میذاره و حسین و سید به سرعت میدونن و خودشون رو به شیار می و پناه می گیرن حاجی با حیرت نگاه میکنه. اینا اینه چرا منور نمی نمی دونم اینقدر بیا کجا؟ تو دل عراقی ها؟ مگه اغلا سر طریقه؟ اینه تا وقتی نیروهاشون تو مدرسن منور نمی زنن بریم اون بالا راه برگیاش نداریم گیر می مگه اینجا گیر افتادیم؟ اما برا که نمیتونی بری، پنج نفر از دو نیروی دوباره شون درگیر میشیم و خودمون رو رادم. با درگیر شدن ما، با... دو میهران من تو انجام میکنیم. ما برا لوم میره. آجی به ما نیاز داره بهتر ها پناه باید پوشش بوده با ناپیکی. تو یه رهایی دیگه اشیار کرده عراقی گوییش. بیا باید گردم. سعی جا رو جا میکردم میکشوند. به هر دو از بین اشیار میذانو پشت یه بوته پناه. اصلا نگران نباش. مگه من مرده؟ بقید ذکر بکن انان میرسیه امید <تصفح> <تصفح> جنازه شهیدو کل کرده و سینخیز جلو میاد سید و حسید زامن نارنجکو میکشن <تصفح> <تصفح> چند نفر حلاق میشن حسین و سید پشت سیم خواردار سرشونو رو بالا میارن و نگاه میکنن تعداد باعثها زیاد شده و به سرعت لاندور به زخمی با و یه سر دیگا کن. دیگا کن. دیگا کن. یه صدای تیراندازی شنیده میشه حمید از میون مینها داره جلو میاد شلیک شدید, شدید شده فرمانده و دستور میده که پلاه بیره سین و از زیر سینه خاردار رد شده به سرعت خودشونو به پشت سنگره و اسی ها میرسوند به چه با خودم میگه جلو مگ... مگه من بگیره تو میتونم رو از معبر کنم سید حسین نیمخیز از لا بلا یه رد میشن آجی با بیسیم صحبت میکنه ما اینجا هنوز بلا تکلیفیم بگو ببینم اونجا نقلا را رو, رو گردنتون میریزم یا اینکه بی هدف بی باشن که بی هدف آجی. من بعید میدونم آدرس دستشون باشه سید و سید از به سرعت پایین می آن. پشتیه بوته پناه می گیرن. ستون باسی ها در حال پیشتریه. حسین و سید به سرعت دور میشن و خودشونو به مقر باسی ها می رسونن. ماشین سنگر می گیرن. یه سرباز بعثی نگهبانی میده چند نفر سرباز بعثی به همراه فرمانده از سنگر بیرون میان افراد كل واحدی روح الموضعه سید حسین پشت کانتینر هلال احمر میسن نگهبان بعثی لیست بازگسی برمی داره تا یه ماشین حاضر بشه سید حسین از فرصت استفاده میکنه در کانتینر رو باز میکنن و داخل میشن و درو میبندن مثل که انبار بهدایتی همین که عراقی توش نیست جای شکرش باقیه داخل کانتینر تاریکه دارومی جلو میره، میشینم هر یخ کردم خیلی سرده سرما اینجا کشنده است. حاشکاف کانتینر یه پتو پیدا میکنن و می‌کشن رو خودشون. دی؟ صدای فرمانده بعصی شنیده میشه. افتح الباب يلا, يلا بسرعه. در کانتینر رو باز می‌کنه. فرمانده بعصی چراغ رو روشن. یه جنازه با برانکارت میارن کنار حسین و سید میزنن چندین جنازه بحثی دیده میشه قوتوه جوا فرمانده چراغو خاموش میکنه و میبنده سید و حسین از زیر پتو بیرون میاند دو سوله خراب حاجی، حمید و فرمانده و چند رزمنده مشغول صحبت هم وقت وقتو از دست میدیم حاجی، معبر من که بازه بس دیگه همه بس بسه معبر می معبر همه چی به هم خور. باید یاد ها رو برگردنیم اخب خودت گفتی عراقیا ها آماده ای عملیات اگه با این نیروها نمیتونیم عملیات کنیم و دقل میتونیم جرای تک عراقی ها رو بگیریم من حدس میزنم که اونا میخوان عملیات بکنن با یه حدث که نمیشه نیروها ها رو زمین گیر کرد دوربین دیدبان خکریز رزمنده ها رو نشون میده چندین انفجار پشت سره هم بچه های رزمنده سری پناه ه بریم تو سید میکنه اتیش بریزن بریم تو سید بریم عدس نمیزنه ما اینجا بیه البته هایگه پشت این تپه باشه سه تا از رزونده ها از شکاف تپه بالا میرن حسین و سید داخل کانتینر یخ کردن کانتینر سردخونه باسی هاست آفا. خط خاکریز هدف موشک های بعثی قرار گرفته بحث یا پشت سر هم شلیف اگه تا غروب بسته یه دو خبری نشد بیسی میزنم که نیدوها را آجی، می‌بینیم زدن که خودتون رو سریع برسونیم به خط. بچه‌ها رو زیر آتش گرفتن. بریم. سید و حسین داخل کانتینر به شدت از سرما می‌لرزند. صدای ترمز ماشین و صحبت کردن باصیر شنیده میشه. سین و سید به سرعت بین جنازه های بحثی دراز می کشن. در کانتینر باز میشه چندین سرباز بحثی جنازه ها رو از داخل کانتینر به کامیون منتقل می کند. راننده کامیون داد میزنه که در کامیون رو ببندند. فرمانده بحثی اعتراض میکنه دستور میده که دو جنازه باقی مندرم به کامیون منتقل کند. ايه لا تبعث في البر يلا فين هم ايه عدد المواهم الجاهلين عين شالون اصلا هاي الجثث ليش هنا صيحوا السائق يلا بسرعه عم سیدی، لیاش های جثث ما خسته ما تدرول معدن وقت ما سیدی، انتب كل لازم تاخدوها ولا جثث بقیه ثلاجه. یلا بسرع. سرباز سید و سینوبار داشته داخل کامیون انسان دارم یبندن و کامیون حرکت. حسین از لابلای جنازه ها بیرون میان سید سید کجایی؟ سید دست کمیده و بعد از لابلای جنازه ها بیرون میان سید حال توی؟ فقط میدونم <متصف> داشتم خفه میشدم از مهدرشن که اومدیم بیرون باید هر طور پیاده بشه البته اگه بتونیم این داره باز کنیم پس دستگیرش کن تو کارخونه یادشون رفته از این بارم دستگیره بذارم کامیون هلال احمر از ایست <تص�> بازرسی رد میشه سید رو در میاره مندازه طرف هواکش کامیون وقتی مندازه دسته اغب بگیر یه اختی دستت کشیبلای پر روح یکی دو بار تکرار میکنه چفیه به پره هواکش بیر میکنه هواکش خاموش میشه سید هواکش رو از جا در میاره کامیون عراقی تو جاده حرکت سید از هواکش بیرون میره اتحبا. حسین هم میخواد بیرون بیاد که یه جیب بعثی دیده میشه سید تو صفحه کامیون دراز میشه. زین عجله کو. اینا تو هر دو روی صفحه کامیون میرن. خوب شلوغه دادیدند یک دو سه چهار پنج حالا و بعد باب دو پای میکردم از سینکش تپه بالا می پیم دریوش میام بابشی میسکی دستم زاره ای که دوتا جیپ بسی در آن نزدیک میشان محوطه پشت خاکریز ساپ گوش ها سریع تر داماده را ببرم هماشالله باید سنگره را یه آب و جاروی بکنی بجون بین بچه ها باریکلا رزمنده ها در تکاپوی جابجا کردن مهماتان. همید با لباس خونی به حاجی نزدیک هاچی همید جان هیچی ولی حاجی تکلیف چیه تکتیف ما رو سه یه دو مشخص کرده بیر از این همید درسته اما هاجی عملیات چی؟ خط زعیف شده اگه منو تو قوی باشیم خطم قویه بس برو خط و بچه ها رو تقویت کن همید از هاجی دور میشه هاجی به دو نفر که برانکارت هم میکنن نزدیک میشه معاونه هاجی روی برانکارت خامیه. تو چه ساری معاونه کن؟ هاجی وینا بگو منو بذارم تو هم آفتش رو بیان ها؟ بچه ها ببر اینش آشباز خونه باش بره اینجا آفتش کنن حاجی جون تاره خودم بگو مره بزرن زمین حاجی نظر منو ببرن معاون حاجی رو به سمت آمبولانس میبرن حاجی برمیگرده به محفته رزمنده ها در حال بازسازی و آماده سازی سنگره هستن حاجی به سرعت قدم بر میداره پتویی که جلوی سنگر آویزونه کنار میزنه داخل سنگر میشه تو سنگر پیرمردی با مو و ریش سفید جلوی عکس آقا ایستاده سلام سلام التماس دا. آجی دگاهاش گاش میکنه پیرمرد به سمت آجی میاد دست مشونه آجی میذاره و بعد سنگر خارج میشه آجی داخل سنگر زانو زده به سجده می و گریه میکنه کامیونه هلال احمر بحثی ها تو جاده در حال حرکت امشه سرعت. فرمانده بحثی با یک جیب دنبال کامیونه سیدی هلو واحد توک. راننده جیب به سرعت نزدیک کامیون میشه. پیج جلوی کامیون هر دو ماشین افسر افصر و راننده کامیون در عقب کامیون رو باز جنازه های بسی روی هم ریخته و هواکش کامیون کنده شده فرمانده با عصبانیت راننده رو بازخواست میکنه فرمانده به سمت جیب میاد با بیسین پیام میفرسته من الدوره افنین الى جمیع الوحدات حالت انذار قصوه وسط بیابون حسن زخمی و خسته روی زمین میشه دیگه نبیتون پس چرا باش؟ ماده جای امن پیدا کنه. واسه سدی که گرفت وقتی همه چی تموم شده یه جای امن به چه دردمون می‌خوره؟ تازه ماجره شروع شده. مگه این تو ما تموم شده باشه؟ کاتون تموم شدن مرد. حسای عصبانی از روی زمین بلند میشه به سمت دیگه میره. کل عملیات به این دو تا محور بود که یکیش با اون انفجار رفت رو هوا اون یک کم با قیبت ما غیر قابل استفاده است. دیگه چه ماجرا میتونه شروع بشه چرا رفت میکنه همه ماجره اون چیزی که تو میفهمی؟ چون خرم نمیفهمم قبول نداری؟ سید به سمت حسین میره هممون نمیفهمیم اگه ما تو این بیابونا بی صاحبیم بسر کدومی که از عملیاتی که تا به حال شده مو به مو محاسبات عقلی ما انجام شده محاسبات ما یک درصد از صد درصد کل ماجره است 99 درصد دست درست اون بالا یک خودت هم میدونی فکر همه چیز رو حواست هفته معبر قفله آره قفله در صورت که ما واسه عملیات اون دو معبر رو کافی بدونیم یعنی چی؟ شاید بعد از اون دو تا معبر ست تا دره وجود داشته باشه دیشب یه چیزی ندیدی؟ مگه میتونستیم ببینیم من میگم تو اون تاریکی یعنی فرما را داده این فر بر. نمیدونم برای چی ولی شب پاهمون مال خودم نبود ولی یقی من دست تو بود اینو خوب یادم آره درسته وقتی تو اون خوابم من برات بریدم مسافرت خریدم چه خواب دیدی؟ سه تا از رزمنده ها آماده حمله روی شیب شیار پناه میگیدن تیری به کنارشون رزمنده ها آمده. به ترتیب بلند میشن به سمت بالای تپه شلیک میکنون من از اون اول گفتم گفتم مارگیر باید این مارو بیگره بلدی میخواد باید تا دو ساعت پیش اون شکارچی ستاد میرسید معلوم نیست کجاست دوربین دیدبان از سمت دیگه هر سرزمنده رو تو قاب دوربینش میبینه دیدبان با تفنگ دوربیندار تو شیار روی زده. دوربینو به آرامی پای میاره میشینه روی زمین سرشو به دوربین تکیه میده سید حسین به سرعت از شیب تپه بالا میاد اینجا چه خبره؟ اینو میخوان چیکار کنن؟ خانه من یک مگه تا کاره یا این جب یا فرده انتقال تمام جنازه ها به عقب یادته آره ستون کشیمی رای پیاله دیشب نزدیک که خطه اول حدس هاجی درست بود من اینا با این امکانات تک نمیکنن خط اول و دوم و سبور ما رو با خاک اکسان میکنن که اینا دیگه هاجی نمی نمیدونه ولی نمی باید با خبر شه. خیلی خوبه چطوره با نامه براش پس خفته باخیلی حسین یعنی تو این قرارگاه به این بزرگی یه دونه بیست سی پی پیدا نمیشه یا چیه رو زمین میخوابن بس دارومی اون طرف تپه را نگاه میکنه تعداد زیادی تانک بعثی در فاصله دورتر دیده میشه تانک های بعثی در ردیف های منظم و پشت سر هم و ایستادن و آماده حمله افسر بعثی با خیل روی تپه دور طرف یدبان هنوز به تفنگش تکیه داده و تو فکر بود انگار که مندیات قسمت من بود. بچه‌م که ویدا نمی‌تونه. به من زنگ کرد لباسامونو می‌پوشیدیم که بریم مهمونی. یا علو بابا میگه یا لاستیک موتور سه چرخش مون جمع شد. سید و حسین با احتیاط و آروم از بین تانک‌های بعثی بیرون میاد. با احتیاط قدم برمی‌دارن کنار تانک وای میسن. یه سرباز بعثی دورتر از تانک آب برمیداره و دور میشه سید و حسین به سمت سنگر بعسیا میان کامیونهای بحسی پر از مهمات به ردیف ایستادند سید و حسین خودشون رو پشت یک کامیون میرسونند یه سرباز باسی زیر کامیون داره پیچ سفر میکنه سباسی برمیگرده پاهای سید و حسینو می‌بینه مش لصفانة لا مش لصفانة اسكر صفانة تنياها اسوان لما تتقمش ده قولي يا صفون خليك بالعجل اي وينتت وين اسقل اسفان بالعجل ايه نفار بالعاصي नजदीक میشه سرباز بعصی عصبانی میشه داد میزنه و میخواد از زیر ماشین بیرون بیاد که سید با یه لگد خفاشه وانا <تصفح> كنت اینا فاصله بهش حمله میکنه و دهنش رو میگیره تانک ها پشت سر هم حرکت میکنن سرباز بحثی تغلام میکنه خودش از دست سید و واسه بیرون بیاره اما نمیتونه و خفه میشه سید دستش رو با لباسش پاک میکنه چکار میخوای کنی؟ پیسیم میخواییم <تصفيق> یعنی میگه تو اینمه ماشین یه جیپ پیسیم دار نیست من چکار کنم دعا کن از که تر ساعتم بخشنامی کرده عرابی ریش بزنه پس موندن بیخریش تو موند بیان <تصفيق> لبخنده سم بسی چی هم. حسین اول اصلا حسین، جعبه ابزار از زیر ماشین بیرون میاد. یه نگاه میکنه. دورتر، بعصیها در حال جابجایی هستند. حسین جعبه ابزار دستشو به سمت سنگر بعصیا میره. سید سین خیز به دنبال حسین میاد. اینگر ها یه سرباز با یه لیوان چای بیرون میاد حلیل واسه حلیل چای چایی تاراف میکنه حسین به سمتش میره انتبه یک تیبه سرباز بسی نگاه میکنه حسین چشماشو چپ میکنه و خودشو به بغل سرباز بسی میدازید ش میکنم آوات، آه، آه، یه دفعه به سرباز بحثی حمله میکنه. داخل کارگاه یه نفر مشغول کاره. حسین رو سرباز بعثی افتاده و گلوشو گرفته. کارگر بحثی بعثی ساده و او نگاه میکنه. جنازه سرباز بعصی رو داخل کارگاه میبره و بعد بر رو بر بعصی رو نگاه میکنه و لبخم میزنه یه تانکر بنزین نزدیک میشه راننده پیاده میشه به سمت دیگه میره صدای فریاد کارگر بعصی که خونی شده و روی زمین افتاده سید به سرعت خودش به کارگاه میرسن و دهنه کارگر بحثی رو میگیره. حسین دراز تو؟ افتاده بلند میشه جنازه رو به داخل کارگاه میرسن یه فرمانده باسی با یه کارگر به پشت کارگاه میرسن ابو خلیل تعالی نه شوف دا گلت های سیاره فرقوها بسرعة افتهمیت لین آنی لازم اوصل نفسي للمقر قبل و نعم سیدی فقط قصره اینجاست بس به این خبری نیست حالا چه جوگه از اینجا بریم بیرون این سنگر نوامنه راننده کامیون به سمت کارگاه میاد بس اینکه مهمون داریم چی؟ حنا شكرا سید السيد جنازه ها را جابجا ميكنه راننده جلو در کارگاه میرسه محوطه کارگاه را نگاه میکنه هیچ کس نیست اكو احد و حسین پشت تانکر را آماده ایستادند راننده از توی کشو مهر رو بر میداره و پشت برگه میزنه و خارج میشه و به سمت کامیون میره سید و حسین داخل رو بنزین میریزن پرمانده بحثی با جیب جلوی در کارگاه میرسه پیاده میشه به سمت راننده میاد قادمون ساید باز رو این دفعه بحثی این دفعه آمر المقر وین الحراس. كل هالدبابات والناقلات ماكو حارس واحد على الباب؟ هالوضع المخربط هذا؟ لك انت هنا ليش دا تسوق اشمر؟ نعم لتجاوبني يعني اسكت وان الامر فيا جه النم وانت جاي بطريقك ما شفت احد؟ ام العمارة ما شفت بتاع سيدي لا في. وين بالك مخربط خلص شغلك ورجع للمعسكر وسيقجركم وزرو برانيس يلا وقت فانو سانداختي آرون بوشت سرمن بيقيرون وسيقفانو <تصفيق> <تصفيق> سروي زمين من دزي دير بالك من ترجع اذا شكيت بشي خبرني فورا اجانا تقرير عن وجود عنصر غريب بهاي المنطقة لك وين دك باوع قشمر ده احجويةك لک تحت ره مل اعلام نکت اخبار وندت باوع عنصطرت باوع انتبه لزین انتبه دود سیاه از کارگاه پرو میاد سرباز به فرمانده اشاره میکنه سیده حسین میده یه نفر از توالت سی دکسته ولی تو یا بیرو بسرعه يلا ركضوا بسرعه پشت درم بیارنش نه داریم یه دیمور فرمانده به سمت بی سین میاد سربازا دارن آتیشو خاموش میکن الان همه جا شروخ میشه چکار کریم سید بسرعت علوه تجربت ای لحظه ممکنی الفجر خلیم. سید تلاش میکنه بی سیمو جیب در بیاره از توی جیب در بیاره باشه، اشرح. بنزین به سرعت دور میشه. بنزین از لوله‌اش روی می زمین می‌ریزه و آتش همینجور زبانه می‌کشه و انفجارهای پی در وجود میاد. سیستم محافظت مخزن بنزین الان مفشل میشه. بشه دنبال ما میاد. 25 ثانیه میافت. سید برمیگرده بیسیم و برمیداره و میدوه بیسیم تو برو موجی موجه امفجار سیدو به هوا پرد میکنه کامیون بنزین در حال حرکت و امفجار هل لحظه شده, شده. <تصفيق> سید روی شونه حسین و هر دو نفر به سرعت دور میشن سید زخمی شده همین تاجی اعتراض میکنه تاجی تو رو به خدا نیروها رو نفرست برن معبر من بازه بازم میگم باید هر دو معبر باف آخه چرا برای اینکه؟ اگه یکی از مبر رو قتلگاه شد از اون یکی بجایم لکوپ دا بثیر روی محوت دو لازم انتها از لابلای کامیون ها و تانک ها دیده میشه حسن یه موتور پیدا میکنه اونو میاره پشت خاکز حسین تلاش میکنه تا موتور رو روشن کنه میشه. سید روزانو به حسین نزدیک میشه و بیه سیمو بهش میده سید جان عجره کن قسندت میدم به جدن که منو بذارم بارم خفشو به سید خدا میگه خفشو حسین پیاده میشه سیده به کل میگیره و پشت موتور میشه سید سوار میشه حرکت کن. حسین، من با این پس سنگ جری پاتم. منو بذار کنه چتوبور. با بیسیم داره صحبت می‌کنه. دوران رو نخل می‌ریزم. سریعتر حرکت کن و نیروها تو ببر. نیست میگم تا نخلاب عقب نکشیده نیروها تو ببر. دوربین دیدبان سوار شدن نیروهای رزمنده‌ها نشون انفجارهای پشت سر هم در کنار وانده دیدبان دیدوان با دور نگاه میکنه با بیسیم جاسم و صدا میزنه که از پشت هدف تیر فران جاسم از منده ایرانی با تکدیر بیسیم اونو میزنه و دیدوان دشمن را زخی میکنه تکدیرناز لبخم میزنه پیر مرد داخل سنگر میشه پاشا جبون سید و حسین تماس گرفتن الان پشت خد آجی به سرعت خودشو به بیسی میرسونه حاجی هستم فلا چه شما حاجی سید زیاد روبرانیست خوب گوش ببین چی میگم هرچی از تحریزات هر این وریا حدس میزدی زد در اونا قصد تو این یکی دو شبه با تمام نیروهاشون بیان مهمونی آجی جون مهمونیی که میگم از این مهمونی های خانمان براندازه وا امکاناتشون هر چی؟ هرچی که فکرشو بکنی دارن آدرسشون آدرسش رو داری؟ آره دارم نقلا میتونم روش هدایت کنم آجی گوش کن اول آدرس کوچه رو بنویس بعد بریم سراغ نقلا آجی صدای پروازی یه لاشخور بنویس بگو همین جا خوب حواستی تو جمع کن میشونم ببین چی میگن تو شکاف کو سید به تخت سنگ تکیه داده و درد میکشه حسین با بیسین به حاجی صحبت میکنه هلیکوپتر بعثی از دور نزدیک میشه نزدیک شکاف و قصد داره به زمین بشینه که سید تیراندازی میکنه و هلیکوپتر دور میشه. حالا یه بار حد نوشتی برام بخون چی؟ نه علاش خوره با. تو بخون بعد از پنجا قدم از برودی میکشیم تو درسته؟ خب حسین آدرس رو به حاجی میدی. هلیکوپتر شرخی میزنه برمیگرده نزدیک میشه سید دوباره تیراندازی میکنه و دور میشه باید با این سر ها نمیشه اطلاع داد. وقتمون خیلی کمه سید. قبل از سنگرد دو تا دوشکا هست. درسته؟ آره آره دو تا دوشکا است. دوشکای سرچاپا حتما باید خاموش کنیم. همین چی میگم؟ سید کجا میبینی؟ باشه الان میبینه ده. سید به سختی از شکاف بیرون میاد. سوار موتور میشه. حسین اعتراض میکنه. هلیکوپتر داره نزدیک میشه. سید هندل میزنه تا موتور روشن بشه. هلی‌کوپتر خیلی نزدیک شد. کاش هر دفعه سید چیکار در می‌کنید؟ موتور دورش آن میشه و سید دور میشه. هلی‌کوپتر سیدو تعقیب می‌کنه. هی تو نمی‌ری؟ من باید همزمان نخود بریزیم اگر مکار برای تو خیلی سخت میشه سید در ناز بعثی از توی هیلکوپتر به سمت سید تیران نیزی میکنه سید پاکت چه خبره نیشده جواب بده هلکوپتر همچنان سید رو تغییب میکنه تکیران ناز بعثی از روبرو سید رو هدف میگیری و شلیک میکنه ندارد از پشت بیسیم همه چی رو میشنم چی داره به سرتون میاد جواب بده هلکوپتر دور میشه دوباره چرف میزنه نزدیک میشه سید روی زمین افتاده اصلحه را بلند میکنه به سمت تکتیران ناز شلیک میکنه اما تکتیران ناز خشت سر هم شلیک میکنه و سید شهید میشه. بیسیم از دست حاجی میفته و حمید بلند بلند گریه میکنه حجیمات و مبهود حمید و نگاه میکنه هلیکوپتر دورتر از حسین به زمین میشینه و پیکر حسین رو به درون هلکوپتر میبرن حسین با بیسیم با حاجی میگه بلند شده و دور میشی وقتی آدست اداد معطل نکن با تمام قدرت آتش بریز تاکیت میکنم یه ثانیه هم معتر نکنم گردان رزمنده های ایرانی به سرعت نزدیک میشن رزمنده ها پشت خاکریز به سرعت میدونن تا خودشونو به خاکریز بسی نزدیک کنن حاجی از پشت بیسین دستور حمله میده همه تجهیزاتتون رو چک کنید. چیزی جا نمونه آجی با دوربین معبر سید حسینو چک کردم آدرسشون دقیق دقیق خوبه ام نکس ها می کن آتشش آجی چی آتش از طرف رزمنده‌ها شروع میشه تانک‌های بعثی یکی پس از دیگری منفجر میشن دود قلیزی محوطه تانکارو فرا گرفته. ها پشت سر هم سرعت می‌دوند. آتش بریزی! آتش ها پشت سر هم نزدیک می‌شوند. روی زانو می‌شینند. معبر می گذار شده رو بروشونه. محاون حاجی بیرسین به دست منتظر فرمانه هر چی دارید رو سرشون بریزید حاجی همه بکشه ها رفته تو خیامون سیه جان حاجی با چند رزمنده داخل سنگر منتظر هستند؟ اجی میشم میشم موجی موجی موجی موجی موجی موجی همید موجی موجی موقعیت. موقعیت نام موجی موجی موجی به نام نامی علمدار کربلا به نام نامی فاتمه پهلو شکسته یا زهرا یا زهرا یا زهرا خب عزیزان شنونده امیدوارم از رادیو فیلم آخرین شناسایی خوشتون اومده باشه تا برنامه بعد همه شما رو به خدای مهربان میسپارم خدا یار و نگهدار شما